که ترکیب علوم قرآنی خیلی کوهن نیست این که از میکنم خیلی کوهن نیست یعنی مثلا به قرن اول و دوم نمیرسه بله. ما اگر پیگیری کنیم به دقت ترکیب علوم قرآنی تقریبا از آن قرن چهاره. بله. من در این کتاب سیر نگارش های علوم قرآنی که تاریخ علوم قرآنی رو از قرن اول تا قرن سیزده پیگیری کردم دقیق این منابعی را و مسادری را که این موضوع رو مطرح کردن اینا را آوردم بله. این که از کردم این ترکیب برای اینکه که بگویم این گونه نیست که اون چیزی را که آلمان ما علوم قرآنی تلقی کرده اند پیشینش خیلی دیری نیست نه اینجوری نیست الان ارز خواهم کرد که اون چرا که عالمان ما علوم قرآنی تلقی کردن مثل مثلا اون چی که در سیوتی بله. در اتقان دارد یا مثلا زرکشی در برهان دارد اینا پیشینش به قرن اول هم میرسد این بله. تحویر عرض میکنم. این استلاح قریبیتر به قرن چهار نیست خب واخه باز همینجا تاکید کنم که حتی در همون قرن و یک کمی بعدتر و یک کمی بعدتر بعدتر هم آلمان ما وقتی علوم قرآنی میگفتن همیشه مرادشون اونی نبود که امروز داریم میگیم یعنی در این سده اخیر به خاطر تطبیقات و تحقیقات زیاد بسیاری از دانش اسلامی یه شکل مدمن و جمع جوری گرفتن اون یکی از اون علمای پیشین ما وقتی که میگفتن علوم قرآنی تقریبا سه تا اراده رو داشتن که ما امروز یکی از اونها رو مورد بحث قرار میدیم در مسائل دانشگاهی و خوبزوری امسالینا بله مخصوصا علمای پیشین ما وقتی میگفتن علوم قرآنی بیشتر مرادشون علوم درون قرآنی بود یا به تغییر یکی از اساتی علومون فلقرآن بود یعنی مثلا مباحث توحید، نبوت، اخلاق، تاریخ یعنی اون که در دل قرآن هست بله. نگاه کنید مثلا ابو عیسای رومانی تفسیری دارد که این تفسیر البته مفقوده جز یک جزء اندکی از آن عنوانش هست که الجامع لعلوم القرآن یا الجامع لعلم القرآن عملا تفسیره <تصفيق> یا مثلا حفی یه تفسیری دارد البرهان فی علوم القرآن این علوم قرآنی به معنای اصطلاحی امروز نیست فهلیم. یا عالم بزرگوار و افتخار خود ما شیخ توسی رضوان الله تعالی علی اینوان کتابش گرد که به قلط هنوزم روش می نویسن اتبیان فی تفسیر القرآن ولی اسمش اینجوری نیست اسمش از اتبیان الجامع لعلوم القرآن بله یعنی اصلا کلامی تفسیر توی اسم کتاب نیست. نیست. بله. واق ببینید اون و حتی صاحب مجمع هم اینجوری داره. اینها مرادشون این است که من پی نوشتم که در دارنده دانش‌های قرآنی است. یعنی بحث کردم از فقه بحث کردم از توحید بحث کردم از نبوت و الی آخر. بله. بعضی وقتها هم وقتی میگفتن علوم قرآنی خیلی عام میگرفتن یعنی هر چیزی که به گونه ای در فهم قرآن مرتبط باشه خب الان دیگه اینم نمیگن برای اینکه اونی که اکنون به عنوان یک دانش شکل گرفته این رو بگویم دوتا نکته کچه که دیگه کنم یکیش این است که آلمان ما در تاریخ به معنای آلمان اسلامی شیع و سنیشم فرق نمی به تاریخ علم توجه نمی کردن. این کار شما خیلی کار مهمیه بسیار کار مهمیه از این جهت مهم هست که تاریخ علم در فهم موضوعات مسائل و اعماق اون علم بسیار مؤثره بلید. ببینید اگر شما هشتاد سال من خیلی تسامح میکنم که میگم هشتاد سال هشتاد سال برید به اون طرف تاریخ یک کتاب پیدا میکنه که تاریخ تفسیر بحث کرده باشد یا تاریخ فقه بحث کرده باشد یا تاریخ تصوف رو تاریخ کلام رو تاریخ اصول رو بله. علمای ما شرح حال آلمان را مینوشتن این از قدیم مرسوم بوده بله. یعنی با علما توجه میکردن ولی به برایند اندیشه علما توجه نمیکردن برای کتاب ها رو هم معرفی می کردن بله بله اما... یعنی اون در زمن بله. زندگی آلمان یعنی شما کلی طبقات و فقه ها دارید ولی یه تاریخ فقه ندارید بله. طبقات و دارید طبقات و ها شیعه دارید درجات رفیعه، عرفی طبقات و یا های شیعه،, ها شیعه ولی تاریخ علم ندارید این خیلی مهمه در این سالهای اخیر در این دهه اخیر خب این باب شده ما الان داریم که اهمیت داره نکته دوم این است که بله. آلمان ما حالا به هر جهتی شایدم به این جهت که فکر میکنه خیلی واضحه نوعا در آثاری که در علوم میافریدن اون علم را در آغازش تعریف نمیکردن اینم چیز عجیبیه یعنی مثلا یه مرتبه یه آقای یک کتابی نوشته 40 جلد درباره فقه ولی فقه اولش تعریف نکرده گفتن فقه چه دانشی آره که آخر شما سرکیو کیو دارین میتراشی که دارین نمینیسی درسته وقت به این جهت مثلا ما حالا در ضمن سال‌های بعدی خواهیم گفت که اولین کتاب جامع علوم قرآنی مثلا ما لبن جوزیه خب این نزدیک 40 نوع از انواع علوم قرآنی رو داره ولی علم قرآنی تعریف نکرده بزره. یا مثلا برهان در قرن هش بله. یا اتقان در قرن ده یا ال در قرن دوازده اینا مثلا به ترتیب چار جلدی پنج جلدی دوازده جلدی ولی علوم قرآنی رو تعریف نکردن بله. اولین کسی که کتاب علوم قرآنی نوشته و علوم قرآنی رو تعریف کرده صبحی صالحه صبحی صالحه ولی بله. در... همی... بله دیگه همین اخیرا بنده خدا رو در لبنم کشتنش این آدم مولایی هم هست یعنی آثارش هم از دقت برخوردار است و هم از عمق ایشون لذا در کتاب مباحثون فی علوم القرانش میگوید که از نحوه کاربرب علما این عنوان را و همچنین نوشتن مطالب مربوط به این بحث رو بله. ما می توانیم دریابیم که مرادشون از علوم قرآنی میگه اونا تصریح میکردن من استنباد میکنم بله. میگه من از مراجعه به آثارشون احساس میکنم که مرادشون از علوم قرآنی یعنی دانش هایی که به گونه این مرتبط با قرآنه درست و در باره قرآن بحث میکند خب این, این تعریف صحبی ساله هست, صحبی ساله هست. حالا بیایید یک کمی که میایید جلوتر آقای زیاوالدین اتر که حالا ایشون دیگه الان زنده است بله. به نظر من یه تعمل خوبی کرده یه دقتی کرده و این تعریف آقای صبح رو یک کمی کمال بخشیده بله. میگوید که علوم قرآنی عبارت است از, از مجموعه ای از دانش های کلی مرتبطه با قرآن خب بله. ببینید این مهمه نگاه کنید ما گاهی بحث میکنیم که ناسخ چیست گاهی بحث میکنیم که این آیه بله. همین آیه ناسخ است یا نه وقتی بحث میکنیم این آیه ناسخ است یا نه این دیگه علم قرآنی نیست این تفسیره, تفسیره بله. ولی وقتی به صورت کلام بحث میکنیم ناسخ چیست و منسوخ کدام هست این, این, میشه... آه این میشه دیگه علم قرآنی حالا بله. من خودم مجموعه اینا را که دیدم در این سیر نگارش های علم قرآنی البته از این بزرگان استفاده کردم مطالب اینا را دیدم و پراکنده های حرفای اینا را آوردم خودم به این نتیجه رسیدم که علوم قرآنی مجموعه دانشهای کلی مرتبط با قرآن است که وجهی از وجوه قرآن را تبین می یا به پرسشی از پرسش درباره در قرآن پاسخ میگوید بله خب هر دوتا انده که باز کنم ببینید مثلا بحث میکنیم که محکم چیست متشابه کدام است اگر بگیم متشابه آیه است که به خودی خود معنایش روشن نیست این با مبین بودن قرآن در تضاد هست یا نه بله. اگر در تضاد نیست چرا؟ اصلا خدا برای چه آیه متشابه ها ورده؟ بله. اینا در علوم قرآنی بحث میشه حالا اگر اینجوری شد این در یک آیه متشابه نیست مفهوم تشابه در خب. حالا اگر اینجوری شد قاعدتا در گذرگاه زمان چیزهایی بر این مجموعه افزوده خواهد شد و امکاناً چیزهایی ازش فرو خواهد افتاد خب علمها علمهایی دیگه شما یه زمانی در هیئت، هیئت بطلمیوسی رو داشتید الان که ندارید که بهم. یعنی دانشها فربه میشنند لاغر میشنند گسترده میشنند جمع میشن مثلاً ببینید اگر شما پنجاه سال برید اوور شهست سال برید اوار کلی ما از علما و مفسران و محققان داریم که درباره بار قصص قرآن کتاب نوشتن درباره های قرآن کتاب نوشتن بله. ولی هیچگاه اینها سوال نکردند که قصه اصلا چیه؟ شما وقتی میگید قرآن قصه دارد؟ یعنی چه چی دارد؟ ماهیت قصه چیه؟ ها و بعد اصلا سوال نکردن که خدا که قصه میگوید چرا اینجورکی میگوید؟ خدا اگر مبرق است؟ و در کتابش باید تاریخ بگه خب باید از یک جای شروع کنه یک جای تمام کنه دیگه بله. ما یک قصه جمع جور داریم اون مال حضرت یوسفه بله. تازه همونم مرتب نیست بعض جاها حفره داره خلق داره جایی های افتادگی داره خب خدا بعض قصه‌ها ها را تکرار میکنه سیم جا قصه حضرت موسی را آورده بله. پس سوال بعدی این است که چرا خدا اینجوری قصه میگه بهم. و بسیاری از آلمان بحث های خیلی جدی کردم گفتن که قرآن هدفش از قصه اینه قصه اصلا معناش اینه خدا برای این میگوید و به همین جهت تراکم نمیگد پس الان اینا با دیگه میشه چی؟ میشه بحث های علوم قرآنی قرآ. علوم قرآنی قرآ. بنابراین ما خلاصه می‌کنیم که بحث های کلی مرتبط با قرآن است که وجهی از وجوه قرآن را تبین کند یعنی... یا به پرسشی از پرسش درباره پاسخ پ